بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی موضوع سخنرانی امامت جلسه 23 عوض بالله السمی العلیم من الشیخان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الله على و سلم و نبيه و شافعه و نبی العالی المختمت. و, <تصفيق> و, و الله على آله و اهل و الله. أجمعين إلى يوم الدين. <تصفيق> قبلا عرض شد این بود که ما حق ندادیم بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله به انتخاب خودمون هر راهی رو که رفتیم رفتیم مسلمونها ها هر کدام راه برای خود انتخاب کردند هر کسی که هر قدمی در راهی برمیدارد باید حجتی از جانب خدای تعالی داشته باشد که اگر از او پرسیدن چرا دنبال عدی رفتی؟ بگه به این دلیل چرا دنبال مالک رفتی؟ به این دلیل همین جوری بی بی بدون تحقیق و بدون تعیین وظیفه انتخاب کردن راهی ممنوع است هم به حکم عقل ممنوع است هم به حکم شرع ممنوع است خدا در قرآن فرمد لا تقف و مالای سلک بهی علم راهی را که نمیدانی پیروی نکن باید بدانی و بفهمی فیه منشعی فحکمهو الله مورد اختلافات باید رجوع به خدای تعالی شود او چگونه دستور میدهد بر طبق دستور او عمل کنیم. نه به میل خودمون عقل میگوید آیات متعددی شاید به این مضمون باشه عقل به ما میگوید راهی که احتمال خطر میدهی. و تو رو احتمال داره در حلاکت بیاندازه از این راه نرو بفهم و برو یقین بکن که این راه راه حلاکت نیست و راه سعادت است. او رو انتخاب بکن بنابراین ما حق نداریم به دل بخواه خود بگیم میخوام سلام فضل بفرماید سنی باشیم یا به دل بخواه خود بخوام شیعه باشیم یا به دل زیدی باشیم یا مالکی باشیم یا هنفی باشیم هر قدمی که برمیداری باید یقین داشته باشی که معذوری در پیشگاه خدای تعالی و اگر از تو چرا همچی کردی جواب مهیایی داشته باشی هم عقل به من میگه هم این چنین دستور میده از میشد به اینکه پس بنابراین بعد از صورور خدا ما می هر کسی برای خودش راه انتخاب کرد. اون چرا کتاب حال از کردیم این مطلب بود که ما راهی را انتخاب کرده ایم یعنی شیعه راهی را انتخاب کرده است که قرآن به او دستور داده. راهی را که انتخاب کرده رسول خدا به او دستور داده چند شب راجبه آیه تطهیر مطالبی ارز کردیم و ارز کردیم که خدای تعالی در قرآن میفرماید: ان ما یرید الله لیورحبأنکم ورس اهلل بیت و یفخرکم تطهیر را خدای تعالی شما اهل بیت را پاکیزه قرار داده و از هر پلیدی و رکسی دور قرار داده بنابراین ما دنبال کسانی می رویم که تاهرند پلیدی و ریتس رو از اینها دور کرده هم در اعتقاد رس برای اونها نیست هرچه به حقیقت قرآن است و حقیقت دستوراتیست که بر خدا، خدای تعالی به پیغمبرش نازل فرموده نه رسی در اعتقادات دارن نفاق داشته باشند کفر داشته باشند شرک داشته باشند از اینها پاکیزه هن. نه پا... ر... از می شود رس و پلیدی در اخلاق دارن یوتا هراکم تطهیر را پاکیزه از هر رسی در اخلاق هستند، دروغ نمیگن غیبت نمیکنن از حسد ندارن غفن ندارن کینه ندارن و همه اخلاق اخلاق پاکیزه است در اعمالشون اعمالشون دستور خدا واجبات و محرمات را اطاعت میکنن مستحبات و مکروهات رو رعایت میکنن بنابر این نه در اعتقادات نه در اخلاق و نه در اعمال این حرافی برای آنها نیست و رس و پلیدی برای آنها نیست پس هرچه به ما بگویند راست گفتن هر خبری به ما بدهند به دین خلاف واقع نگفتند اگر در اعتقادات چیزی گفتند پاکیزه هستند و غیر واقع چیزی نمیگویند اگر در اخلاق، در احکام، در تفسیر قرآن، در بیان مراد خدای تعالی از آیات در بیان متشابهات آیات مطالبی برای ما گفتن در اونها خرجسی و انحرافی و پلیدی نیست خدای تعالی از من بپرسه که چرا دنبال اهل بیت رفتید؟ چرا این راه رو انتخاب کردی؟ میگیم خود در قرآن فرمودی اینها پاکیزه از هر رئیس و پلیدی دورند ما این انتخاب کردیم برای اینکه شما اینها را پاکیزه قرار داده بودید. دو دوتا حدیث هم راجع به این جهت اجمالاً بیان کردیم یکی اینکه رسول خدا ساواله واله و فرمود این فرمود: مثل و اهل بیتی که سفینات من را که به ها نجا و من تخلف انها غرم روایاتیست که در شیعه و سنی روایت شده و صحیح هست و از نظر سند سنی ها تصریح کردن به صحتها سندن بنابراین مانند کشتی نوحن اهل بیت من اگر به این کشتی تمسک کردید و سوار به این کشتی شدید هدایت پیدا میکنید و نجات پیدا میکنید هر که از این کشتی تخلف کرد، غرق می شود. این حدیث. حدیث دومی هم عرض کرده بودیم. فرموده بوده نیتار کنفی و سقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما انتمسکتون به ما لند تزلو ابدا. دو شیز در بین شما می گذارم. کتاب خدا و اهل بیت من، اینها از هم جدایی ندارند تا قیامت به من وارد بشوند و اگر به ها تمسک کردید هرگز گمراه نخواهید بود خب پس بنابراین اگر از ما بپرسند میگیم خدایا به قرآن تو تمسک کردیم و به اهل تم... اصل بیت رسول تو تمسک کردیم که خود رسول صلی اللہ علیه و علیه با سندهای معتبر بینستی اغسطانی اینها رو تعیید کرده روایت منحصر به اینا نیست ایرام آشاءالله ولی ما میخوام مختصر کنیم و جمع و جورش کنیم این مطلب رو تقریبا تا اینجا عرض کرده بودیم و تمام شد مطلبی را که محتاج به تذکر است، این است. البته چند تا نکته داره تدریجاً ارز میکنیم نکته اول این است که سنی ها به ما میگن ما هم انتخاب کردیم راهی را که خدای تعالی و رسولش برای ما قرار داده کجا قرار داده و کجا فرموده از اون راه دیگر شما برید اینهای روایتی نقل می کنند که رسول خدا فرمود اصحابی کن نجوم به ایه ایهم اقتدیتم اهتدیتم اصحاب من مانند ستارگان آسمانم هر کدام رو دنبال کردید راه رو پیدا می کنید. دنبال هر یک از این ستارها که بروید به هدایت می رسید. بنابراین اگر ما دنبال اصحاب دیگر غیر از اهل بیتم رفتیم همین مطلب هست هدایت پیدا میکنیم، راه می به اون چرا که خدای تعالی به ما دستور داده پس ما هم بی حساب دنبال کار نرفتیم ما هم دیگر رو که انتخاب کردیم برای همین جهت بود که از جانب رسول دستور آمده از خوابی نجوم به ایه مقتده ایتوم افتدی این مطلبی که یکی از مطالب اون آیا این مطلب مطلب صحیحی سیانم و واقعا یه چنین حدیثی از رسول خدا و واله صادر شده یا نشد ما اگر به روایاتی تمسک کردیم که دوتاشو گفتم که قبلا شرحشو دادم الان یادم نیست شاید روایت کتاب الله و اطراتی ما ان تمسک به هشتاد فروغ از آمه و خاصه نقل شده حدیث متواتر است بین آمه و خاصه مجموعه هشتاد سند برای این نقل کردن خب و بعد... بعضی از بزرگان فرمودن ظاهرن از این هشتا تا مثلا فرموده چل پنج تاش از سنیا نقل شده سنیا پنج تاش از چیه نقل شده سنیا بیشتر این روایت رو نقل کرده. خب بنابراین یه همچی است و الا یه دونه روایت باشه مثل بقیه زنون و زن و گمان علم برای ما نمیاره ما بناس به راهی انت برویم که یقین داشته باشیم که محفوظ از خطرین بنابراین ما به این روایات تمسک کردیم و همچنین حدیث سفینه که مثلا اهل بیتی که سفینت نو طرق متعدده ای از سنی و شیعه این روایت رو نقل کردند. نه ما نقل کردیم که بگیم فقط تو کتابهای شیعه موجوده سنی ها نقل کردند. که بنده خودم یه وقت دیگری مراجعه کرده بودم به مناسبت به اون از مشاکی ابن هجر کتابه اون رو نگاه کردم این روایت رو نوشته بود نوشته بود <تصفيق> به صحیح صحیحون و شاید هم در زیلش هم به نظرم این ای بود که مثلا اهل بیتی که سفینت نوح من تمستکه یا من رکه به ها و من تخلف و حلک یه دو ستا جمعه هم در تعریف اهل بیت وَلَا تُعَلَّمُوْهُمْ فَإِنَّهُ أَعْلَمْ مِنْكُمْ به اینا یعنی به اهل بیت من چیز یاد ندین اینا از شما ملاتر هم خب اینو کتاب ابن حجر معروفه در این از از جمعه کسانی است که جزو خیلی خیلی متعصبه در سننگریه و در مقام رد این روایات ولی اون نوشته حدیث صحیح هست و هر حال پس اگر ما به حدیثی از رسول خلا تمسک میکنیم نه حدیث است که سنی و شیعه تمام مسلمان های عالم این روایت را رو نقل کردن نه فقط روایتی از شیعه دوتا روایت توی کتابی باشه بگیم این دوتا یقین آور نیست اما این روایت مسئله و اصحابی دو تا سه تا روایت از طرق آمه البته یه روایت از طرق شیعه است از حضرت رضا الله علیه است که او رو آخر عرض می کند دو سه تا روایت از سنیا نقل شده ولی آیا این دو سه روایت سه روایت برای ما یقین آغره؟ آیا می توانیم به صدق اینها اطمینان پیدا کنیم؟ روایاتیست مخالف با قرآن اصحابی کن به ایه مقتده اهتدیتم احتده ایتون. اصحاب من مانند ستارگانم هر کدام این ستارگان رو دنبال کردید راه را خواهید یا ستاره ها به از راه رو بعدم نشون میدن یعنی معلوم میکنن که این ستاره سمت شماله از این راوری سمت غرب از این راوری سمت شرقه پس میتونید رسیل ستاره راه رو پیدا کنی حضرتم میفرموند از خواب من مانند ستاره ها هستند به هر کدامشون که تم از اقتدا کردید هدایت پیدا می‌کنید. این معنی روایت بس بنابراین اگه ما بودیم و این روایت مثلاً دنبال عمر رفته بودیم راه رو پیدا می کردیم دنبال عبی بکر بود همینه دنبال معاویه بود همینه خلاص راه رو پیدا می کردیم پس شما از اون را می ریم. ما از این را می ریم هر دون دو راه رو پیدا کردیم این مطلب مطلبی رو را که باید در اینجا عرض کنیم شما اگر بخواد آیاتی را که تن قصیدی اصحاب رسول خدا وارد شده شاید متجاوز از 20 آیه شاید دوال من باز 20 شاید بیشتر 20 آیه در ضمن هرجو متفرق درباره اصحاب رسول الله وارد شده چقدر از اینا مذمت شده تو قرآن خدا میدونه ومن هم الذين يؤذون النبي ويقولون هو بعضی از این اصحاب شما کسانی هستند که پیغمبر را اذیت میکنند اذیتشون چجوریه میگن این پیغمبر بوزونه یعنی گوشه هر کی هر چی بهش بگه میپذیره یکی میگه چون اصل قضیه شانه نزولش هم این بوده یکی آمد خبر داد که فلان کس درباره شما همچی گفته گفت خیلی خوب بعد خودمون بنده خدا اومد که گفت من نگفتم فرمود خیر خوب بعد بنده خدای میگه و من هو الذین يؤذون النبی پیغمبر راضیات مکنن می میگن اینو ولش کنه هر کسی چی میگه میگه خیلی خوب و خب، این الان یه ای از اصحاب این چنينه بعضی از اصحاب یه دونه از اصحاب حالا ما هم رو نمیگیم و من منهم الذین بعضی از اینها کسانی هستند که پیغمبر رو اذیت میکنن و اذیتشون چه جوره میگن او با این گوش هرچی به نسبت تصدیق میکنه قول خیر لکن. اگر گوشه است ولی به نفع شما شما درک نمی کنید و عقلتون نمی رسید. خیلی خوب من با اون آیه و تفسیر آیه و اون نزول آیه کار ندارم یه عده هستن از اصحاب رسول خدا که کارشون ازیت کردن پیغاند یه دست و من هم من یلمزو کف صدقات ف انعطو من هاردو و علم یعطه ها اله هم یا سختون بعضیا در صدقات و زکات ها به تو ایراد می کنن. اگه پول زکات بهشون بدی راضی میشن. اگه به اونا ندادی اوقاتشون تقف میشه و ناراحت میشن از لست تو بعد تو سخت و قذب می کنن اصحاب دنبال پول ازا را او ها و ترکوک قائما روز جمعه رفته بودن نماز جمعه میخوانند یه دسته تاجر از یه جایی اومده بودن تبل میزدند، چکار میکردن؟ اینا نمازا رو ول کردن و رفتن دنبال تجارت و جنس و خرید و فروش اینا اصحاب رسول الله هم که خداوند حالا داره در قرآن اینا رو معرفی میکنه آیاتش خیلی زیاده ولی دو سه تاشی که من میخونم برای یک قرازی میخونم که معلوم بشه <تصفيق> عرض میشود به اینکه در یکی از جهنی که من داره توضیح و شرحش الان نمیدانم، در یکی از جهنی که مسلمون شیک شکست خوردن از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما و الله و رسوله الا غرورا منافقین و کسانی که در دلشون مرضی بود میگن وعده های خدا همش دروغ بود حالا همش نه این مورد ما وعدن الله وعده نداد خدا خدای تعالی و پیغمبرش مگر غرور یعنی ما گول زدن که برین اینجا مثلا قلبه پیدا میکنیم برین جنگ قلبه با شماست گول زدن ما رو اینا اصحابی هستن که میگن خدا با پیغمبر ما گول زده الذوشو هم خدا هم قبول نداره ازا کل یا یعنی اعتقادی دارن به خدا ما از الذين في قلوبهم مرض ما وعدن الله ورسوله الا قرورا يا ايها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم فروا في سبيل الله ثقلتم الى الارض چرا وقتی حکم جهاد میده رسول خدا شما میشین تو خونه هاتون به زمین میچسبین و حرکت نمیکنید ارزیتون به حیات دنیا آن الاخره دنیا را پسندیدید و مقدم داشتید بر آخره خوب. ملاحظه می فرمایی. یه جا راجع به پول می خوان. پول دوست دارن اگه پول به ما بدید ما مورید تیم اگه ندید اوقاتمون تلخه یه جا تجارت میکنن. اگر تجارت سلاش بلند شد می دنبال تجارت نماز جمعه را بل می کنن. میگن برین جنگ میگن چنینه میگن شگست خورده میگه خدا ما رو گول زده پیغمبر ما رو گول زده اینا اصحاب رسول خدا قرقاتی و من هل المدینه مرد و نفاق لات علمه هم نحن علم در بدینه در خود اهل مدینه اده زیادیشون و از اون منافقای پابر قرص تو اونها رو نمی ما می شناسیم اونها را سن و و هم مرتن دو دفعه اونها را عذاب میکنیم این یه دو از خواب دور پیغمبر رو گرفتن از اصحاب اصحابی که نجوم مثل ستاره ها می درخشن هر دلتون بخواد بگیرین بگیریم؟ یکی رو میبره تو جهنم برش میخواید ببریه راه جهنم و بهتون خوب نشون میده خیلی خوب و من هم و من من حولکم من ال اعراب منافقونی میتو قالوا الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا ما مَا قُتَلُوا ورمد یه ای در باره شهده همچی میزنن خودشون نشستن تو خونه هاشون نرفتن برای میدان جنگ تو خونه هاشون نشستن و درباره اون شهده که رفته بودن جنگ و شهید شدن میگن اینا اگه حرف ما رو گوش میکردن کشته نمیشدن یعنی مثلا حال حرفشون چی بوده نمیدونم چی بوده مثلا میگفتم مثلا ما این تو خونه کار نداشته باشیم به این کارا شما مراجع و جنگی که به دستور رسول خدا صلی الله علیه و علیه. خود رسول خدا و اصحاب خاص او شرکت میکنن حالا این میگه نه اگه حرف ما رو میشنفتین کشته نمیشودم قل فطروا ان انفسکم کنتم صادقین شما قدرت دارید مرد رو از کسی دفن کنید که اگه حرف شما رو میشنیدند دیگه نمیردند کشته نمیشودند اگر میتونید مردو دفن کنید از خودتون دفن کنید بنابرای آیه شریفه اینا, اینا کارای از کردم اینا اینقدر زیاده الاموشالله شاید از کردم حدود 20 آیه با کم و زیادش یا بیشتر یا کمتر در این اصحاب وارد شده البته بعضی از این آیون علماء سنی ها میگن اینا منافقین بودن این که این حرف رو زدن منافقین بودن بعضیش، بعضی از این آیه ها در حق منافقین وارد شده بعضی شاید این چنین باشه ولی <تصفح> این چنین نیست <تصفح> که همه این آیات در حق منافقین باشه در حق هم وارد شده <تصفح> الَّذِينَ قَالُ همینی که الان خوندم الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا در حق برادرانشون هم چی گفتن یعنی اون شهدا که شهید شدن در حق اون برادرانشون هم چی گفتن خدای تعالی که منافق رو برادر مؤمن حساب نمیکنه در حق برادرانشون گفتن یعنی اینا مسلمون بودن و برادر اون شهدا بودن در اینه این برادر بودن گفتم بیخود رفتن مثلا اگه حرف ما رو گوش میکردن کشته نمیشدم بنابراین آبدای اینو نمیتونیم بگیم در حق منافقینه و ازاره او تجارتا او لحوان فضل و ها همه رفتن شاید عرب، عرب پشت سر رسول خدا چند تا تو روایات من بلد نیستم دو تا سه تا چهار تا پنج تا باقی موندن همه رفتن همشون منافق بودن ن ما که نمیشون. ولی این مطلبی که باید عرض کنیم این هم یکی بله و اون آیه دیگر که گفته بودن به این که الازیقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرز منافقین چنین گفتن و همچنین کسانی که در دلشون مرزی بودین چنین گفتن گفتن چی گفتن؟ گفتن ما و الله و رسوله الا غرورا ما رو گول زدن خب بنابراین منافقین رو که اسمشون رو برده الذین یقول المنافقون و الذین فی قلوبه مغزون دیگه کیا لابد غیر منافقینشونه واقعا ایمان داشتن به خدا و پیغمبر ولی ایمانشون پرپایه درستی نداشت ما گور خوردیم خلاصه در این قضیه بنابراین نمیتونیم بگیم این همه این آیات و آیات زیاده باید مراجعه کرد با سر پرسر آیات زیاده و در حق اصحاب رسول خدا اینها بارد شده اینهایی که ستارگانه این از نظر مخالفت با آیات قرآن آیا میشود این مطلب بف... مطلب ها می ما این مطلب رو بپذیریم که تمام اصحاب رسول و خدا همشون به منزله ستاره و همه صلاحیت دارند دیگران رو هدایت کنن خب خود این اصحاب رو می بینیم با هم اختلاف دارن بنابراین اگر این روایت روایت صحیحی باشه نتیجه این میشه که در جنگ عرض میشود به که جمل یه طرف امیر صلوات الله علیه یه طرف تلهب و زبیر و آیشه اصحابی کن نجوم بنده چه بکنم اینجا اگر به اصحابی کن نجوم بخواهم دوستو کنم میگه اگه صبح رفتی تو لشکر علی باز و بیر و تلهب و آیشه جنگ کردی هدایت یافتی اصلی رفتی تو اون لشکر با علی جنگ کردی بازم هدایت یافتی میشه این مطلب؟ اصحابی که نجون به ایه مقتدریتون احتدریتون صبح دنبال اینم اصل دنبال و خود اینا با هم اختلاف دارن اگر خود اینا اختلاف کلاف دارن من چگونه می شود؟ یعنی دین یکی بوده دستور خدا یه مطلبه حالا هر کدوم اینا به یه طرف دارن می کشن. در جنگ سفین معاویه اصحاب رسول خدا بوده حالا من جزب اونا باشم یا جزب علی باشم این روایت این رو میگه میگه جز به اینم بودی خوبه جز به اونم بودی خوبه اصلی با علی شدی با معاویه جنگ کردی کار درستی کردی اصف صبح و از دو صبحش با معاویه شدی با علی جنگ کردی بازم کار درستی کردی میشه این مطلب؟ ملعبه نیست با دین ما اینا حالا میرسه سر احکام اینا که یه خیلی شروع بلوقه ابی حنیفه داره تو روایات داره که ابی حنیفه گفتش که من سعی کردم از ابی حنیفه داره یعنی شعال من یادم رفته یه جایی که داره که چند جا با رسول خدا من مخالف فتوام با رسول خدا و بعد اون وقت میگفت سعی کردم هرچی از صادق میگه من برخلاف اون فتوا بدم فقط یه مطلب نمیدونم که از ساده تو سجده چشاش رو وا میکرد یا چشاش رو هم میذاش که اگر هم میذاش من بگم چشاتون وا کنین اگر وا میکرد من بگم هم بذارین یا آقا هم گفت احتیاطش اینه که بگین یه چش رو وا کن یه چشت هم بذار احتیاط اینه خب دیگه با یه نتیجه میشه هر کدومو گرفتی ادایتی یک دل میشیم میشه لعب هست کردم لعب با دینه مسخر کردن دینه هر کاری کردی کردی با هر کدوم بودی درسته این مطالب مطالب گفتنی نیست اینا تمام فرض میکنیم فرض میکنیم تمام اصحاب رسول خدا از اون نیکان عالم. اصحابی کن نجون روایات متواتر شاید یا حد اقل مستفیز مفید یقین از سنی و شیعه رسول خدا فرمود من در قیامت وارد می شدم می بینم جمعی از اصحاب من رو دارن می به جهنم سنی و شیعه این روایات رو هم چند. تو سعی بخاری تو سعی مسلم تو رمایات خودمون سنی و شیه. در روز قیامت وارد میشوام و میبینم چه دیر ای رو ملائکه به سمت از اصحاب من به سمت جهنم میبرن ارز کردم خدایا اصحاب منن اینها فرمود میفرماید خبر نداری تو که بعد از تو چه ها کردن اینها و برگشتن و اعقاب جاهلیتشون به اعقال و جاهلیت برگشتن من یه خوردش رو نمیشتم یه خوردش بخونم براتون ازمی شود ببایت این خطه برسول بر الله صلوه علیه و علیه یجا علی. به رجال من امتی فیقخذو بهم ذات اشتمال فا یا رب اصحابی فیقال که لا تذلی ما احدسو بعدک فاقول كما قال العبد الصالح من در اون وقتی که خدا می تو خبر نداری بعد از تو چی کردن من اون چرا میگویم که بنده صالح خدا یعنی عیسی علیه السلام در آیه شریف این چنین فرمود و کنتو علیهم شهیدا ما تو فیهم فلما ما توفیتنی کنت انتو وقیب علیهم من تا وقتی زنده بودم مواظب اینا بودم و اما وقتی مردم تو خودت بهتر از من میدونی به هر حال فایوقال ها اولائ خطاب میرسه به رسول خدا ها اولئ لم یزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتم از روزی که تو از دنیا رفتی نا باریشتن به عاقاب خودشون پس اگر روایت اگر و یقینا دروغه من که از اون چیز رسکت میناد دارم اگر روایت اصحابی کن نجوم صحیح هم بود تا وقتی که زنده بود پیغمبر این آدابه خوبی بودم فرض کنید و اما بعد از او سنیشیه اکلم یه دونه روایت نیست شیه من به نظرم شاید در باب فتن و ننم چی چی؟ مرموم مجلسی در جلده هشتم قدیم بهار نقل کرده صحیح بخاری در همون اول بنظرم صحیح من که ندارم صحیح بخاری ولی همون اول صحیح بخاری این روایات رو نقل کرده که اینها بعد از پیغمبر مطالبی حادث شده فتنی که بعد از پیغمبر پیدا شده خب بنابراین است که تو صحیح بخاری تو صحیح مسلم کتاب دیگه باید اینا رو مراجعه کرد مراجعه میخواد کار طلب که باید مراجعه کنن اینا رو تو روایات نقل کردن شیعه هم الاماشالله باب اوله شاید باب اول فتن و نهان کتاب تا جلد هشتم چاپ قدیم اونجا این مطالب و روایات رو نقل کرده ماشاالله. خب چی شد حاصل مطلب در امشب؟ در امشب این شدش که ما راهی که انتخاب کردیم خدا در قرآن فرموده راهی که انتخاب کردیم اطرت است که لن یفترقا هرگز از قرآن جدا نمی شود حتی یردا علی الهود مثلا اهل بیتی الاخر اینا رو ما انتخاب کردیم اما شما روایتی رو انتخاب کردید که اولا خود سنیات تو کتاباشون نوشتن حاضحی ضعیفت و سند این روایت ضعیف و سنده خودشون نوشتن علاوه بر این روایاتی رو انتخاب کردید دو تا یا سه تا روایت نقل کردند. روایاتی رو انتخاب کردید مخالف با قرآن است مخالف با وجدان است هر کدام از اینا رو گرفتید هدایت شدید هدایت می شوید عرض کردم صبح با علی باش عصر با معاویه باش هر دو هدایتی هر دو هدایت بنابراین اینم ای و روایات باز متواتره یا شبیه به متباطر از رسول خدا که فرمود بعد از من در قیامت وارد می شوند. و اصحاب من بعد از من سیاه کردن یرتدون علی اعقابهم هم بنابراین حالا فرض مثلا ارض میکنیم فرض میکنیم اصحابی که نجوم درست حسابی و, و خوب بعد از پیغمبر کدومشون برگشتن کدومشون بر نگشتن من حالا از هر کدوم تپی رو بیکنم هدایت شدم خودشو دارم میبرن جهنم ملائکه دارن این رو میبرن جهنم من پیغمبر رو برمد من به اون خدای تعالی عرض میکنم اینها اصحاب من بودن خدا میبرن تو خبر نداری چه گردن خب خود رو میبرن جهنم من داری میبرن بهش یا دنبال او رفتم هدایت یافتم بنابراین الان بعد از پیغمبر دنبال کی باید رفت ما بحثمون سر اینه و فرز که اینا خیلی آقاهای خوبی بودن درجه یک در زمانی که پیغمبر زنده بود و نتیجه نتیجه هم مخالف با عق، هم مخالف با قرآن هم مخالف با روایات ای که بعد از پیغمبر اده زیادی از اینها برگشتن به عقاب قهفران پس این روایت را بر آلم درست نمیکنه کنه یعنی میخواد تو چلدی افته باید دنبال این روایت بره نه راه هدایت به اونشون بده اللهم و شنان آن و محمد و عجل <تص>